برلین آلمان، نه نوامبر 1938 برای آخرین بار به آینه نگاهی انداختم تا مطمئن شوم سروزم خوب است و مشکلی ندارد. کراوات و دامن آبیم با هم ست بودن و با بلوز سفیدم کاملا تناسب داشت. کت قفی رنگم را برداشتم و شروع به کردم. موهای تلاییم دو طرف چهرم رو می پوشند. لبخند زدم و به لوازم آرایشی که در کنار آینه روی هم چیده شده بود نگاه کردم. ما آریایی ها که به این چیزها نیازی نداریم آرایش برای سیاهبست ها و رنگ پوست هاست یک نگاه دیگر باینه انداختم و مطمئن شدم که برای رفتن به جلسه ای که با جوانان هم داشتیم کاملا آماده‌ام. هم. من همیشه با اشتاقه زیاد منتظر تجمعات هفتگی انجامن بودم و به عضریتم در این انجامن افتخار میکردم از اینکه من هم به خاطر عضریت در آن جزی از عضمت آینده سرزمینم آلمان به شمار می‌آمدم خوشحال بودم عظمتی که مدتی بود از آلمان بزرگ فاصله گرفته بود. آنچه که دلوستگی من به دیدارهای انجمن رو بیشتر میکرد این بود که در مسیر بازگشت با لوکاس هانسمن همراه می شدم و با او قدم زنان تا خانه می آمدم. لوکاس همسایه, همسایه ما و یکی از رهبران اتحادیه کارگران جوان آلمان در برلین بود. پدرم خانه بود و با مادرم و خواهرم هیلدا در اتاق نشیمن نشسته بود. با ماندنش در آن ساعت روز در خانه قافل گیرم کرد او هیچ وقت قبل از نیمه شب از محل کارش در اداره پلیس به خانه بر نمی گشت. حتی اجازه نداد از دلیل حضورش در خانه آن هم در اول شب سوالی بپرسند به محض دیدن من گفت امروز کسی حق بیرون رفتن نداره تا جایی که من ژنرال را میشناختم او زیاد اهل صحبت و گفتگو نیست می دانستم او هر وقت دستوری داد حتما باید اجرا شود انگار من یکی از سربازان پاسگاهش بودم. نگاهش کردم. لباس رسمیاش رو پوشیده بود. لباسش مزدین به مدال 18 سال خدمتش بود که پیش و دو ماه قبل به او هدیه داده بود. به خودم جرعت دادم دستورش رو به چالش بکشم. چرا که نه؟ ما در انجمن یاد گرفتیم که هیچگاه در مقابل موانعی که بر سر راه عشق ما به وطن قرار میگیرد تسلیم نشویم. اما امروز جلسه جلس گفتم کسی حق نداره بیرون بره ها امن نیستند از لحنه قاطع و آمرانش فوراً متوجه شدم باید از دستور اطاعت کنم به مادرم نگاه کردم تا شاید به کمکم بیاید هرچند احتمالش کم بود چون می دانستم از انجامن و هر نوع اجتماعی که شبیه ها آن بود و من به آنجا راه داشتم بدش بعدش این مشکل نسل مادرم بود که نسل ما را درک نمی‌کردند ما ن هستیم که به خاطر سرزمین پدریمان از نو به کاخاستیم و عظمت از دست رفته آلمان را به کشورمان برخواهیم گردند. سرزمین پدری چقدر در این تعبیر انرژی و قدرت هست. این تعبیر فقط شایسته آلمان بزرگ است. اینجا مثل دیگر کشورها سرزمین مادری نیست. مردم کشورهای ضعیف دوست دارند وطن خود را سرزمین مادری بنامند. این آخرین تلاشم بود تا شاید پدرم از حرفش برگردد. لوکاس با من پدر نگران نباش. گفتم کسی حق بیرون رفتن نداره دیگه حرف نباشه من خواهرم و پدر و مادرم در سکوت نشسته بودیم مادرم در یک دست انجیل و در دست دیگرش تصبیر داشت چه این موقعیت هایی که جر و بحث بین من و پدرم در میگرفت باعث می شد مادرم از آنچه در کشورش میگذشت بیشتر متنفر و بیزار شود از من هم به خاطر پیوستنم به انجمن عصبانی بود هیلدا اما به مادرم نزدیکتر بود هرچقدر برای اوزیتش در انجامن تلاش میکردم قبول نمیکرد. من سعی کردم برایش از اوقات شادی که با دوستانم در گرده همایی ها میگذراندیم و سفرهای جذاب ماند و فرصتهای جالب دیدار با دیگر اعضای انجامن تعریف کنم. تا او را ترقیب کنم عضو انجامن شود. اما فایده نداشت. جرال بسیار قانون مدار بود. در کارش یعنی در ارتش همیشه و در هر حال به قانون احترام می‌گذاشت در خانه خیلی کم حرف می‌زد بوی این هم قانونی بود که باید به آن احترام می‌گذاشت و خود را ملزم می‌دانست رعایتش کند قانون کم حرف زدن با ما به طور کلی هر چیزی که از نظر او قانون به حساب می‌آمد التزام با آن را واجب می‌دانست آن روز سکوتش کمی مرا نگران می‌کرد هرچند این کم حرفی کاملاً با شخصیتش هماهنگ بود اما از نگاهش کاملاً مشخص بود که موضوعی فکرش را مشغول کرده است مطمئن بودم پشت این نگاه چیزی وجود دارد که او را نگران می کند و البته آن را به ما نمیگوید و ما از آن بیخبریم. ناگهان سر از بیرون خانه شنیده شد و سکوتی که بر اتاق سایه افکنده بود را شکست. صدای شعارهایی در حمایت از آلمان بزرگ و فریادهایی که خواستار خروج دشمنان از کشور بودند به گوش می رسید. هر چهار نفرمان به طرف پنجره رفتیم. تدادی از جوانان محله را دیدیم که به رهبری لوکاس شعارهای علیه دشمنان وطن تکرار می کردند. آنقدر, پرشور و, ف... انقدر پرشور, و ح... پرشور و حرارت فریاد می زدند که رکای گردنشان متورم شده بود. نزدیک خانه ما که, م... که رسیدند مقابل اتقه فروشی معیر ایست دادند. صدای فریادشان بلندتر شد و شور بیشتری گرفت. یک نظر معیر و خانواده را دیدم که از پنجره خانهشان بیرون را نگاه می کردند. در یک لحظه لوکاس دستش را بالا برد و بعد همه ی خاموش شد. همه ساکت شده بودند. جوانان پشت سر او خشمین ایستاده بودند، دستش را پایین آورد و به جلو اشاره کرد. سپس همگی به طرف مغازه هجوم بردن. در کسری از ثانیه همه شیشه های مغازه شکست و بعد از آن جوانان به قسمت پشتی مغازه حمله کردند. س... صدای شکستن و ریز ریز شدن لحظهی متوقف نمی شد. وقتی جوانان خارج می سطح خیابان پر از خوردهشیشه شده بود و نور چراخها را منعکس می کرد. گویی نگین هزاران انگشتر در کف, در کف خیابان می درخشید. به خرده های درخشان خیابان اکتفا نکردند و با فریادهای جدید و با اشاره دیگری از طرف لوکاس حمله جدیدی را آغاز کردند. هر چیزی که به دستشان می رسید به طرف پنجره های منازل پرتاب می کردند و می شکستند. بعدا فهمیدیم که آن شب این اتفاق در اغلب محله‌ها و خانه‌های یهودیان آلمان رخ داد. ناگهان وسط آن همه آشوب و خرابی‌هایی که در خیابان جریان داشت، راشل مایر دختر همسایهمان از دور ظاهر شد. من و راشل زمانی دوست بودیم، اما از وقتی در سخنرانی‌های ضد یهود شرکت کردم، بین ما فاصله افتاد. در همین نشستها بود که از توته های یهودیان و فعالیت های آنها بر ضد آلمان و نقش آنها در ویرانی های کشور در زمان جنگ و بعد از آن مطلع شدند توجه همه ما به راشل جلب شد و همه نگاه ها به سمت او رفت به نظر می رسید که او از دیدن آن حمله وحشیانه به منزلشان گیج شده است چند لحظه آرام قدم برداشت و سپس با قدم های سریع به طرف خانه رفت چشم لوکاس و جوانان پرشور و به خیابان به او افتاد لوکاس او را خوب میشناخته همه در یک آن و بدون هماهنگی قبلی ایستادند منتظر بودند تا با آنها برسد قلبم تند میزد راشل بیخبر از خطایی که متوجهش بود مستقیم به آن جمعیت عصبانی نزدیک می شد. سکوت همه جا را فرا گرفت لوکاس و دسته همراهانش به او چشم دوختند اما راشل بدون لحظه ای توقف به سوی در خانهشان میرفت درست در لحظه ای که جمعیت به طرف او حرکت کردند صدای پدرم را شنیدم نفهمیدم که ای به طرف خیابان رفت. اصلا متوجه پایین رفتنش نشده بودم. لیلیان، چرا اینقدر دیر کردی؟ بیا تو، زود باش. لیلیان، چرا پدرم نام مرا صدا میزد؟ لوکاس و دوستانش بر جای خود متوقف شدند. در مقابل حیبت پدرم و لباس نظامیش جرعت حرکت نداشتند. به نظرم اومد که حتما لوکاس هم وقتی شنید پدرم نام مرا صدا میزند مثل خودم خیلی تعجب کرده است در میان بوحت و حیرت همه پدرم را دیدم که دست راشر را گرفت و او را به داخل خانه مها آورد نگاه حراسان و نگران خانواده معیر را از پشت پنجره شکسته خانه روبرو حس می کردم.